و در را ادامه بدم. به همین علت تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به کشور آمریکا سفر کنم.